از خون جگر تا حجرالسود میخواهیم ببینیم که از خون جگر که این همانی با اقتران ماه و پروین داشت در فرهنگ ایران تا حجرالاسودی که در مکه همه به آن دست میزنند تا گناهانشون بخشیده بشود یا ریخته بشود رابطه هست. انسان در آغاز در تصویر و با تصاویر میاندیشید. ما امروز بیشتر در مفاهیم میاندیشیم و توانایی اندیشیدن در تصاویر در, در ما کاسته شده است. ولی برای فهم پیشینیان نه تنها برای فهم پیشینیان بلکه برای فهم دنیا که در آن تصاویر از مفاهیم جدا نیستند باید از نوع اندیشهدن در تصاویر را یاد گرفت درست فلسفه با همین توانایی اندیشیدن در تصاویر آغاز میشود. در یونان هم از میتولوژی از استور شناسی به فلسفه رسیده شد نه از تئولوژی از تئولوی از تئولوژی راه به فلسفه بنبست است حالا برمیگردیم به گفتار راجه به جگر که در گفتگوی پیش ترک کردیم حالا یه کمی ادامه می دهیم که بیشتر در این ابکار جرف بشه جگر که گفتیم جی یا جی گراو بوده است به معنای گراو یکی نیست یکی زهدان به معنای سرچشمی زندگی و اشخاص یا نای زندگی و عشق چون گراو به معنای نای ناو و گره است و گره چی هست بیان پیوند دو بخش نی به همه این در دنیای پیشین نشان بیان عشق بود درست واجه گره امروز ما و گره از همین گراو و گره که و گره نی باشد ساخته شده است گربیدن به معنای با دیگری مانند دو بخش نه به هم پیوسته شدن است و معنای پیرو و تابع شدن را ندارد من در گربیدن یعنی چیزی با تابعه اون نمیشوم بلکه معنای عشق با هم دیگر را دارد ولی به غلط این باجوی معنای ایمان آوردن پیدا کرده است بر رگ هم نای میگویان که خون شیرابه روان در آن است و تا شیرابه که خون در رگ روان است زندگی هست از این رو واژه جیب که امون از جیس ساخته شده است و عین همان است که به معنای خون هم هست هم معنای خون دارد هم معنای زندگی و جگره که جیگر باشد نیز به معنای سرچشمه یا نا یا زهدان آفریننده خون است. یعنی آفریننده زندگی و مهر است. این پیوند خیلی مهم است. این پیوند را در فرهنگ ایران نباید فراموش کرد. در تصاویر اندیشیدن. ولی دو مفهوم بسیار مهم که پیم. که پیوسته با همان از آن پی یافتن. این پارسافش خون در راغ بیان زندگی و عشق و شادی و نیرومندیش خون در راغ جی هست. یعنی ظهره یعنی بی دخت،, بی دخت که یکی از نامهاش جی هست در راغس اراغ ارتوس خورم دخترش خونش هست حالا این بیان چه هست بیان زندگی و عشق و شادی و نیرومندی است اینها از هم جدا نپذیرد و این خون است که تحول به باده و به شیر در پستان و سرک در چشم مییابد که سه چهره دیگر عشق و مهر و زندگی با هم هستند در سقدی به خون خورنمیگویان که در اصل خور نو بوده است خور نو بچیانی چی نو نیافت خور خونآبهنه این همانی خون با دو پدیده زندگی و مهر با هم سبب شد که سقدیه این باشه خیلی مهم است خون معنای چی داشت زندگی و مه با هم سب شد که سقدیه ها ور و برخی از ملل دیگر به احور و, و یک نیست که زردوشتی ها برداشته باشن احور و مزده است که ملل مختلف به خدا می دادن. تقدی ها دیگه نمیگن اهور آمده میگن خور مزدا بقی همین چی خور همین خون است حالا این واجه معنای باده هم دارد این است که هور شده است این ها با همان اونها این رو جدا از هم فکر نمی کردن. حالا به اردی بهش که همین ارتا باشد خور جانی چی می میگفتن این جانی زن خدا اسم جاینی اسم زن خدا بود است که بعدش در در شناسی زردشتی دیو ساخته شده است این بیرونی در بیرونی به این خورجان میگوید که به اردی بهش حالا به خورشید هم چقده ها چی میگفتن؟ خور ارتا میگفتن این خون،, خون ریزی معناش معناش این بود که زندگی و مهر با هم و شادی را میعبشاند می میریزد خورشید هم که هنوز ما خور میگویم خورشید خور همین معنا رو دارد این خور. بریدن رگ که خون ریختن باشه یعنی چی یعنی زندگی و مهر و شادی را نابود کرد چون رک بریده شد شاهرگ خون فباره می میزند و زندگی از بین میره و این این بریدن شاهرگ و خون ریختن این همون آزردن یا قهر و خشونت و برترین جرم شناخته می شود اصاساً به دیب خشم یعنی خدای قهر و تجاوز و تهدید خوردروش میگفتند خوردروش دیب خشم معنیش چی؟ یعنی نجزه خونین یعنی سنان نخونین دروش همون این اصرش دربش است ولی این دروش همون واجه درشتی ما شده است. در واقع درشتی زدن نیزه و سنان و تیق به شاهرگ گاب قربانی برای ریختن خون و کشن او بوده است خشم در ایران یعنی قهر و تجاوز و خشونت و تهدید با همین خوردروش بیان میشود. ببینید واژه درشتی بهتر از واجه خشونت است چون که کلمه خشم معنای نی دارد که به زن گفته می است و این تحقیر زن است از این واژه باید پرهیز بشود درستی خون که جد شیرابه مهر و زندگی و نیرومندی است از رک ارتا که خدا جانان هست ریخته می شود از رگ خارج ساخته می شود خون باید در رگ روان باشد تا جان باشد ببینید ریختن هر خونی کشتن خدا شمرده می شده است حالا همین واجه است خور که هور رم, خور رم که نمیگیم این هورم یا هور رام است که همون زهره و همون اصل زیبایی و رامش و مهر و همون خون در رگ یا باده در رگ است چیرابه ارتا که همین خون که همین و... یعنی حقیقت و جان ارتور برای ما خون باریدن ابر یا خون باریدن آفتاب علامت شو میست ولی در این فرهنگ بارش ابر بارش زندگی و مهر بود و از این رو در بندهش گفته می شود که ابر جام باده است این خون یعنی زندگیست که باده می شود مستی شادی چادی می آورد. راستی می آورد. از این رونی نیست هست که وقتی زال به سراغ سیمرغ می رود و در مجمر آتش پر او را می میسوزاند همون مجمر آورد و آتش فروخت و آن پر سیمرغ لختی به همان در زمان تیرگون شد هوا پدید آمدن مرغ فرمان روا یعنی سیمر چو ابری عبری چی؟ چو عبری که بارانش مرجان بود چه مرجان؟ که آراویش جان بود خوب اینجا اصطلاح این مرجان آراویش جان است سازنده زندگی منظم سازنده چو ابری که بارانش مرجان بود سیمرغ یعنی این زن خدا خون میبارد اما این معنیش چی یعنی مرجان چه مرجان که آرایش جان بود بر او کرد زال آفرین دراز ستودش فراقوانو بردش نماز و مرجان در شاهنامه این همانی با خون دارد من چند مثل میآورم که نزدیکی این دو مفهوم را روشن کنم مثلا در, در رزم کابوس با شاه هاماوران میآید که که من شاه را بر تو بیجان کنم به خون سنگ را رنگ مرجان کنم یا در داستان سیاوش و فرود میآید که داستان سیاوش همین سنگ مرجان شد و خاک خون سراسر سر سربران شد نگون حالا تن ترک بدخواه به بفرود که برادر تنی ناتنی که خود رو میگوید ترک بدخواه تن ترک بدخواه بیگان کنم خونش دل سنگ مرجان کنم این واژه مرجان در اصل مرگان است مرگان مثلا به عدس در تبری میگن مرجی در ترکی میگن مرجمک این مرجی این همون عدس است. عد, عد و اس، یعنی دو تو، دو لپه در یک قرام عد و عس شده از عدس یعنی همزاد یعنی جفت و انباز یعنی عشق حالا مرگن که مر راجع به مر خیلی صحبت کردیم مر اصلا واجه مار یکی از معانی مهمش نیست مرگن یعنی نای مر این خدا اسمش چی بوده است اندروا نای... نای بهبوده است نای مر یعنی اندروا یا خورم است و نام دیگرش ما چک میتونیتونیم فوری صحتش را ببینیم است بتسد شده است بوس نیاست بامبوس در فارسی بوس میه است و صد همون واژه ساتی در سانتکریت است که به معنای زن است یعنی بوس یعنی چی؟ یعنی نای زن. که سرچشمه خون و زندگی و مهر است بنابراین خود واژه مرجان همون معنای خون و زندگی و مهر را دارد جگر که جیگر جیگر گرفت باشد این همانیش با چی داشت با اختران خوشه پروین با حلال ماه داشت که همه دنیا از آن آفریده میشد که یکی از نامهاش جدوار میگن، جد ور بر. زهدان ورس جد شیرابه چصفناک. و شی... یعنی عشق که از ور در... بیرون میاد. زهدان و سرچش سرچشمه جد جد شیرابه چشمنده یعنی سرچشمه پیوند و مهر و مهر خواهی اینجا این رو ترجمه میکنن به نیک خواهی خجسته هوجد است خجسته هوجد ترجمه می کن نیک خواهی ولی نیک خواهی معناش مهر خواهیست سروش خجسته هوجد این خیلی است چون که سروش خدای قداست جان است مانع کشدار می شود این جد یا جد یا شد در حاجه شدداد این که خدای شدداد می خدای ایران بوده شد داد همون جی در جگر است و گرو همون ور است که جد ور به عبارت دیگر جگر هر انسانی بهره از اختران ماه با پرمین است گفتیم این بیان همگوهری بوده است بیان اینی که نبوده است که همچون یا هماننده حالا این اختران ماه و پرمین غوناس اصل و سرچشمه آفریننده گیتی و جد و شد است. یعنی جگر عشق و مهر نخستین جهان است که همیشه از آن خون از آن جد جی رنگ خور میجوشد این واجه ها را من مقصدان میگم چون که اینها یک معنی داره البته چنان چه دیده خواهد شد اختران و ماه و پروین را به ماه پر میگفتن ماه پر این همانی با مغز داده میشود اضافه برای اینی که با جگر داده می با مغ داده می شود. حالا چرا را بعدش خواهم گفت. و ماه پروین که مغز باشد به اقتران حلال ماه با, پربر... با پربین است این است که انسان سرویس که ماه پر ماه گرد بر برپرازش است یعنی مغز... مغز انسان این همانی با این اختران دارد ببین چه اصالت چه می میدادن به مغز انسان به جگر انسان این اینها همه بیان اصالت و ارج انسان هستن ما امروز به زور با ترجمه حقوق بشر به ما میگویند این را میگویند کرامت کرامت نیست عرج است این همه بیان اصالت و ارج انسان هستند. ما میریم قرض بکنیم داریم مثل گدایس که روی گنج خوابیده هست میرود برای یک شاهی به قرض پهلوی اینان جگر و مغز سرچشمه آفرینندی خون از یک طرف و روشنایی از طرف دیگر در خود هر انسانی هست اونها در همین تصاویری که به نظر ما خرافات و منخومات میرسد فلسفه ای را بیان کردن که عرض انسان و سرچشمه و مرجع بودن انسان رو بیان می کند سرچشمه یقین انسان به خود هست انسان خود را هم گوهر با خدایان میداند نه عبد و عبید خون، جی، رنگ، خور، شیرابه، انگوم، انگ و جد اینا چی هستن؟ از خوشه پروین است. خوشه پروین چیست؟ بهمن و ارتا یعنی بهمن و هما بهمن و سیمون دو رویه یک چیزن اون بهمن نادیدنی و نگرفتنیش نا در در هما دیدنی و گرفتنی می شود. یعنی چی؟ یعنی جگر که بهمن و ارتا باشد سرچشمه خونست سرچشمه جیس. از اینجا اهمیت و معنای جرف خون را میتوان شناخت. ما تصویر کاملاً از خون داریم که آنها و نامطابق با افکاری که آنها از خون داشت جگر اصل جوشش و زهش زندگی عشق و شادی این اصل جوشش یک زندگی دو عشق سه شادی است. اینها از هم جدا نپذیر بودن چون جی که در اینجا گفتیم جگر سرچشمه جیس نام خرم یا رام است نام دیگرش چیست شاده است ما دنبال فلسفه شادی پهلوی ارستو و افلاطون دویم ولی نمیدانیم که خدای ما اصل شادیست در هر انسانیم جای تعسف است چون جی نام خرم یا رام است که نام دیگرش شاده است سان زندگی و مهر و شادی از هم جداناپذیرند در خون هر انسانی هستند که از جگرش میترابند این فطرت انسان رو نشون میده هر نیز آزرده شود باز زندگی و مهر و شادی با هم ازان از آن میجوشند این است که وقتی پرومتهوس در بر یونان برای گناهی که کرده بود آتش آورده بود برای انسان ها در سخره کوه وراز کوه، او را میبندند و اقاب هر روز جگر او را میخورد ولی روز دیگر باز این جگر اثر میروید این از همین کنسپ میآید از همین مفهوم از همین تصویر یعنی اصل آفریننده زندگی و مهر شادی به رغم آن که اقاب, اقاب آزرنده می خورد و او را عذاب می‌دهد، ولی نمی او را از بین ببرد در شاهنامه دیده می شود که بسیار از جگر خسته و خسته جگر سخن می رود خستن چی است؟ خستن مجروح کردن و زخم زدن و کوفتن و کتک زدن است. جگر چگونه خسته می شود؟ چگونه دردمند می شود؟ وقتی که در آن رابطه مهر و زندگی و شادی به هم بخوره از هم پاره بشه یعنی وقتی مهره به زندگی این ب... ما... این معانی در جلوه دست ما، پیش دست مهر و زندگی از هم جدانا پذیل مهره به زندگی نه مهر به خود مهره به زندگی در اجتماع و آموزه ها و فلسفه ها و هر شریعتی از هم جدا ساخته می شود چطور جدا ساخته می شود وقتی انسان یعنی زندگی یعنی جی در اون نباید همه زندگان رو دوست بدارد بلکه با جانهایی که او کافر و بیگانه و همه بیگانه میدانه دشمن است فکر آزردان آنهاست زندگی بدین از مهر بریده میشه چون که اون هم زنده جی هستن فقط مومنان جی نیستن زنده, زنده نیستن جگر خسته میشود؟ ماه و پروین اختران نمی کنن نمیتوانن بکنن یعنی چی؟ یعنی جهان هستی از آفرینش زندگی و مهر میفتد تمام دنیا به هم میخوره. بدین سان زندگی جی خود را تابع قدرت قاهر یعنی اصل خشم میکنه. جی حاضر است. از مهر به زندگی خود و همچنین از مهر به زندگی دیگران از مهر به جانهای دیگران بگذارد. ترور بکند. بکشد. این جگر خسته میشود. از این پس جگر و خون که تراوش جگر است پیکریابی درد میگردن این است که در اصل برعکس و پرهنگ اصیل ایران در ادبیات ایرانی دوره اسلام جگر با درد سر و کار دارد من چند نمونه میارم که این روشن بشود از خون دلم ابو زید میگود از خون دلم هر موجی پنداری سیخیست که پاره جگر بر سر و قم نقل و ندیم درد و مطرب ناله می خون جگر مردم و چشم هم صاحبش. یا بابا تاهر میگوید زه آهم هفت گردون پرشرر بی ز مژگانم روان خون جگر بی یا میگوید دل از دست قمت زیر و زبر بی به چشمان اشکم از خون جگر بی یا حافظ میگوید خوشا نماز و نیاز کسی کسی که از سر درد به آب دیده و خون جهان خون جگر تهارت کرد اویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شک شود و به خون جگر شود این خون جگر در است خوب میبینید به کلی ناگهان مفهوم خون به کلی عوض شده است خون همیشه با درد کار دارد چرا؟ چون این دو پدیده مهر و زندگی در خون در جگر در آن اصلا بریده شدن که در انبازی با هم اصل شادی هست در بندهش میبینیم که از خون گاب و نخستین که پیکریابی همون خوشه پروین در حرال ما هست چه میروید؟ از خون او این عبارت از بندهش از خونو کودک رز که می از او کنند و به دین روی می برای خون ابزودن زورمند ترست این تحول خون به باده گوهر شاد و دوست گوهر شادی و دوستی و مهر و بینش و جوانمردی و راستی را نشان میده باده در فرهنگ ایران که از همون واژه باد ساخته شده است معنای آذرپروزی و اصل و مهر و عشق را دارد ما در ادبیات ایران با چیرگی شریعت اسلام با جگر خسته کار داریم که سرچشمه درد است از این روح است که خون جگر خسته که در چشم تبدیل به عشق به عشق غم می شود و همیشه بیانگر درد عمیق وجود انسان است درد عمیق وجود کی... کیهان است یعنی تمام کیهان پاقده عشق و مهر شده است به عبارت دیگر اصل هستی جهان سرچشمه درد شده است